خب النهی دومین گفت ما کجا رسیده بودین؟ انشای طلبی بودین. یک نوع اولش امر بود و نوع دومش نهی. خب بیاید روی قواعد القواعد قاعده 40 کتاب النهی طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. ببینید امر طلب فعل بود على وجه الاستعلاء و النهی طلب کف هست انجام ندادن علاوه وجه استیلا شما کسی رو درخواست کنی این کار رو انجام نده اینو میگن کف علاوه وجه الاستیلا بر وجه استیلا بر وجه چی؟ استیلا چلو یک لین نهی واحده واحدتون هی المضارعو معلاء النهیه میگن نه یک صیغه داره امر چار تا داشت نه چان تا داره؟ یک صیغه داره و اون هم مزارح هست بالای نهیه به خاطر گفته بود لای ناهیه چون لاهای دیگه ای؟ وجه استیلا یعنی نحی کننده بالاتر باشه قویتر باشه فراتر باشه آره دیگه؟ نه دیگه شما پادشاه خودتو بگی اینو بشه نمیگن نه علا وجه استیلا باشه علا وجه چی باشه؟ استیلا. یا خداوندو میگی ربنا لا تو آخذنا اینو دیگه بشه نمیگن نه <تصفيق> وتعيشين؟ باله. قد تخرج سيا النهي عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى. ميجاها خارج مش السياقة النه، أز معناها الحقيقي بمعانهاي ديجي تستفاد من السياق وقراءة الأحوال. كجرفتمي مش إين معاني السياق وقرينةها قرينةها. كدعاء ها نحن ميجا بمعنى دعاء مري. ما ربنا لا توأخذنا ها. والالتماس بمعنى الالتماس بشه زمان اك درسات هم باشند والتمنى بمعنى تمنى مره والإرشاد والتوبيخ والتعييس والتحديد والتحقير باين معاني بكار مده با توجو بقرينه قرينه هاي حالت والحالت داره بله هلا بيهايدين جاي كار الامثلة الچه؟ قال تعالى في النهي ان اخذي اخذ مال اليتيم بغير حق الله متعال در نهی از گرفتن مال یتیم بدون حق میگه بله بله از حالت و حالات از چه از تو صدا از حالت از قرینه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن نزدیک مال یتیم نشوید ما قرب نيّة إحسان خل. ولا تقين نحية قطية بمعنى نحيةين وقال في النهي أن قطع الإنسان رحمه إن جهم الله متعال در قطع الرحم مجيء در سر نزدنا بخشان مجيء ولا يقتل الفضل منكم وسعة أن يؤتوا وللقرمة صوّجان ما خرّد هيد صاحب فضل خرادي صاحب فضل مالدار و وسئتی که بخیشاوندانش چیزی ندهد بله در سوره مبارکه نورید خب اینجا میگه که ولا یقتل اینجا فعل نحیه فل چیه اونجا حاضر سیغش مخاطب بود اینجا غایبه اینجا چیه پس اینجا به معنای نحی حقیقیه و نحیه وقال في النهي ان اتخاذ بطانة سو از گرفتن دوست بعد نزدیک بد میگه یا ایهاللذین امرو لا تتخیدو بطانت من دونیکم لا یعنونکم خبالا امامنان نزدیکی رو نگیرید جز خودتان که در بدی کردن به شما در خیانت به شما هیچ کوتاهی نمی کند همچنین کسی رو نزدیک خود نگیرید دوست نزدیک نگیرید اینجا به معنای چه هست به معنی نحس بله بگو سر کلاس بو سر کلاس وقال مسلم ابن الولید بله لا کن خبالا یعنی در بعدیشون هیچ کوتاهی نمیکنند در تخریب امورات شما هیچ کوتاهی نمیکنند در فساد و فتنه بین شما وقال مسلم ابن الوليد في الرشيد مسلم ابن الوليد در رابطه برشيد لا يعد منك حمل اسلام من ملك اقمت قلته من بعد تأويده ميقه از دست ندهد دولة اسلام همچن تيغه هم همچن تره مسلم ابن الوليد برشيد ميقه چرا؟ چون تو قله‌ی آن حکومت اسلام رو راس کردی بعد از این که سست و کج بود خب در مثال چهارم در مثال چندم در اینجا که این این نحیو میکنه این نهی مریچ است این دعا هست بله اینجاست؟ لا. بله، لا. یعدمن کل كل... یا لا یعدمنک حمل الاسلام من ملک. داره دعا میکنه که دولت اسلام بدون پادشاه تو نباشد. میشد این به معنی عدمه. یعنی چی؟ میشه عدم دیگه. مشخصه. در مثال پنجم وقال ابو الطيب فی صيف الدوله ابو الطيب در رابطه با سیف الدوله میگه این ابو الطيب همیشه سیف الدوله رو چون در روزگارش بوده نه مدح میکنه فلا تبلغاه اقولو اقوله فانه شجاع متى يذكر يذكر له التعنو يشتقي میگه نرسونید به او آنچرا که من میگویم آنچرا که من میگویم وصفش میکنم به گوشش چرا؟ چون میگه اون اینقدر انسان شجاعی هست که اگر تعن و ضربه و جنگ براش ذکر بشه شوقش بیشتر میشه شوقش میشه برای این کارا بیشتر میشه خب اینجا عبود طیب لا تبلغاه لا تبلغاه فعل نهیه مال با سنه دیگه لا تبلغا دو دوستشو داره میگه دو دوستشو داره چی میکنه؟ قبلا در امر خوندیم که درخواست دوست از دوست التماس بود این هم پس اینجا نه به معنی چیه؟ التماسه بله نه لا تبلغا هست لا تبلغا هست ما اقولو او اون کتاب رو بینداز دور وقال ابو نواس در مدح امین میگه یا ناق لا تسامی او تبلوغی ملکا تقبيل راحته و رکنی در شماره شیشم میگه چی میگه؟ میگه ای ناقه شطور داره میگه میگه شو تا به که برسی؟ به شح بوسیدن کف دستش و بوسیدن رکن حجرال اسود با هم مصابی هند شعرات که غلوف کردن در در وصف خب اینجا اگر بیایید اینجا ابو نواس داره چیکار میکنه تمنا میکنه که شطورش مشقت سفر رو تحمل بکنه و تا زمانی که به منطقه اون شاه برسه خسه نشه متوجه شدید چی دیگه برنامه‌ت تمانی میشه بله تمانیه و قال ابو العلاء ابو العلاء میگه ولا تجلس الى اهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي در مثال بعدی ابو العلا میگه و ننشین با انسان های پست بد اخلاق چرا زیرا خلایق ها اخلاق انسان های سفیه توادی سرایت میکنه میگه با انسان های پست ننشین با بدان ننشین زیرا اخلاق اونا در تو چکار میکنه سرایت میکنه والا این توادی مون لا ادوا ولا تیاره خب در این مثال در این مثال ابو الالا داره چکر میکنه؟ ارشادش میکنه بله پس اینجا نه بمانیتیه؟ ارشاده وقال ابو, أبو الاسود الدؤلی لا تنها ان خلق و تأتي مثله نه نکن از اخلاقی که خودت اونا انجام میدهی از کاری که اونا انجام میدهی نه آرن علیک اذا فعلت عظیمون کون این آره بزرگیست که دیگران رو نه و خودت اون رو انجام بدی در شماره هشت اینجا نهب به معنی توبیخه آه؟ اینجا نهب معنی چیه؟ آقا خودت داری این کارو میکنی در حال که دیگران داری نه میکنی در حال که خودت داری چی کار میکنی؟ انجام میدی وقال آخر و ديگري گفته لا تعربن لجعفر متشبهن بندا يديه فلست من اندادي دقت داشته باشید در این مثال که لا تعربن لجعفر متشبهن بندا يديه فلست من اندادي میگه تو شبیه جعفر نکن تخدت خود شبیه جعفر نکن تو در بخشش در بخشش خود تو شبیه جعفر نکن فلسته من اندادی تو از شبیهان او نیستی از امثال او نیستی اینجا نه به معنا چی هست داره تئیس ناامید کردنه میگه تو هرگز نمیتونی به پای او برسی تو تو نمیتونی مثل جعفر باش تو نمیتونی مثل کی باشی پس اینجا نه به معنی چیه تئیس بله، تای اسباب تفعیله ناامید کردن اینجا دلالتی حال چیستی شیخ خبیدشتون؟ یعنی باید رسیب امید؟ آره دیگه شما مثلا موقعی که مثلا این چه زمانی از حال، اگر ما تو اون حالت باشیم می جافه رو کاملا شناخته شده باشیم و خود هم بشناسیم می دونیم که منظور اینجا نحکننده چی؟ آه؟ جعفری که این همه میداد منی که اصلا حتی حاضر نیستم یک پفک به دیگران بدم خب موقع مثلا بیام خودم رو شبیه جعفر کنن این شعر رو بب... ب... نحی نهیو به من بگن میدونم که این نحی اینجا چی معنایی داره آه؟ طرف حاضر نیست یه استکان چایی بده و یه انسان دیگه هست میلیاردها ها تو من روزانه میده ادعا داره من مثل اونم آه؟ متوجه شدید؟ بریم دلوتر یا در مثال دهم ده میگه لا تمتس امری تو کار منو انجام نده آه تو مثل من نیستی تو کار منو انجام نده این چه زمان میگن؟ اگر زمانی که یکی از تو پایین تر باشه مثلا شما اومدی یک کاری رو انجام دادی مثلا یک پادشاهی هست شما خیلی باش رفیقی یا یعنی حسن خیلی انسان جورتمندی میاد یه حرف میزنی. حالا یه بدبخت کچی که هم میاد، همون عدای شما رو در میاره کار شما رو انجام میده شما بهش میگه آقا لا تمتسل امری تو کار منو نکن خود تو فرق داری زمین تا آسمان با نه اینو چز، به چی میگن اینو؟ به اونی که از تو چه باشه؟ پایین تر باشه میگه لا تمتسل امری اینجا میدونیم که امر به معنای نه لا تمتسل اینجا به معنای نه حقیقی نیست به معنی چه هست تهدید هست کسی رو کفاین تر از تو باشه بهش میگی لا تمتسل امری تو کار منو نکن تو کار منو نکن بعدش میگی قال ابو طیب یهجو کافورا ابو طیب در حالی که کافور رو حجو میکنه من شو چی نوشتی؟ لا تشتر العبد انت کتابت بده ببینمش؟ يجو كفور هذو یک روز خودش مش ساده شد. خب بریم جلوتر. لا تشتر العبد الا والعصاه نخر بردرا را مگر اینکه عصای باش باشه. یه چوبی همراهش باشه امدالعبی دل انجاسون منعکی دو بی بردگان بیارزشند بی خیرند. اگر چوب همراهشون نواشه اگر تنبیشون نکشی... نکنی اینا آدم نمیشن متوحش شدی؟ اینجا نه معنای تحقیر رو میده معنای چه تحقیر. تحقیر تحقیر کردن کوچک کردن میلا تشر الابد الا والعصمه غلام نخره مگر اینکه همراشته باشه چوب باشه داره تحقیرش میکنه داره چیکار میکنه بله پس امر و خوندیم ان در جلسات بعدی استفهام و ادواتش و دیگر دروس رو با هم خواهیم خواند